که بعد از اینکه که دیرن که تهمویس رفته و اون دیو گرفته و به راه وزیرش و بسیار مثل عصف زین پشتش گذاشته و در دور دنیا میچرخونهش اوقات چون تفت شد من این بیتاره میخونم شده قبلا برای مطلب دستون بیاد میفرماید که مرور یکی پاک دستور بود که رایش دکردار بعد دور خنیده به هر جای و شهر است نام نزد جزب نیکی به هر جای گام همه روز بسته ز خوردن دولب به پیش جهاندار بر برپای شب چون جان بر دل هر کسی بود دوست نماز شب و روزه آین اوست سر مایه بود دختر شاب در بند بود جان بطاق همه راه نیکی نمودی به شاب همه راستی خواستی پایگاه oh چون آنشا حالو به گشت از بدی بتابید از او فرغی ایزدی که گفتم که اینجا پاردار اشتباه کردن فکر کردن که بچا دو آسی هستند با با فرغ ایزدی من راجعش حرف زدم برفت رفت سهرمن را و افسون ببست چوب تیز رو بارگی برق نشه است رفت اهریمن رو افسون بست و مثل اس سوار شد زمان تا زمان زینش پرساخت زین درستیت نداشت پشتش همین گردگیتیش گیتیش برطا چو دیبان بدیدن کرد او کشیدن گردن ز گفتها رو شدندن جو من بسیار مر یا یادتون باشه گفتم آمار و شمار همین مره که پردخت مانند از او تا پر آمدن دیبان جمع شدن که تهمورس رو کلک شد بکن. اینجا یه مطلبی که قبلا گفتم بعد هم شواهد بسیار ازش این است که افسون که الان به معنی اهریمنیش معمولا به کار میره وعنی جادو جنبل و ندرم برد و از این حرفا در شاهنامه یه افسون، البته سریحا گفتنش به ولی هست یه افسونه احوراییست و یه افسون احریمنیست افسونی که تعمورس پر ضد دیوان به کار میبره و اونا رو با افسون میبنده این نمیتونه که افسون احریمنی باشید باید که افسون احریمنی و احریمن کار نمیتونه اصلا. در ناگذیر باید افسون احورایی باشه اولا نشون میده که اینا با عالم غیب اونطور اعتقاد داشتن که با آلان غیب مربوطن بعد هم افثونش افثون اهروراییست قبلا هم گفته بود که پری پلنگین آمده بود و قسط رو گفته بود از این میگه که آقایی ما شما بخونید سخته 37 از افتش رو کنید بخونید بخونی. چو تفن رس آگه شد از کارشان برا شبت و بشکه از بازارشان به فر جهاندار بستش میام به گردن برآورد گرز گران همه نر دیوان افسونگران برفتند جادو سپاهی گران, گران. دمنده‌ای سیه پیش پیشرو همه با آسمان بر کشیدند جهاندار تخمور سپا بیامد کمربسته رزم و کین یکا یک فراراست بادی جنگ نبود جنگشان را فراغان درنگ از ایشان دو بهره به افصان ببست دگرشان به گرز گرام کرد پس کشیدندشان خسته و بسته خار به جان خواستند دان زمان زین ها که ما را مکش تا یکی نو هنر بیاموزیم بیاموزیم بیاموزنیمت بی که آید ببر که یه نامورد دادشون زین ها بدان تا نهانی کنند آشکار. بدان تا نهانی کنند آشکار نهانی, نهانی کنند آزادشون شد سر از بنده اوی بجستند ناچار پیوند او نوشتن به خود رو دلش را چو خورشید بفروختند نبشته یکی نه چه نزدیک سی چه رومی و چه تازی و فارسی چه سقدی و چینی و چه پهلوی نگاریدن آن کجا بشنوید کجا بشنبید نگاریدن آن کجا بشنوید؟ جهاندار سی سال از این بیشتر چه گونه برون آوریدی هنر برفت و سر آمد او روزگار همه رنج و مانز و یادگار جهان آم ما پرورد چو خواهید چمی چو چومی بدربی پروریدن چه سود بخش از من که اینجا ملاحظه میتنم که میگه وقتی از کار دیوان آگاه شد رفت و بازارشون شکست برای شکست و بشکست بازارشون شکستن بازار یعنی از بین بردن رونق و شکوه به هر حال اما کلمه بازار محروم پوردابود یادمه که سر کلاس یق که رضا قلی خان هدایت بازشته توی انجمنا فرهنگ انجمنا ناصری گفته که این بازار در اصل باز آر یعنی آدم میره یه چیزی از انجمن میخره بعدش خونه اینه که باز آر شده بازار و مصحره میکرد البته این این ریچ شناسی عابونه است و اینطور نیست بازار از مصدر چریدن اواچره یعنی باهم چریدن الان در گیلان یه جایی هست میگن واجارگاه واجارگاه واجار همون صورت دیگه از بازار و در واجارگاه کاملا باهم چریدن پیداست و بازار ها معمولاً جاهایی بوده که پول که هنوز نبوده سیستم موادلاتی بوده همینجوری که الان تو ده ها چاشنبی بازار و چشنبی بازار و پنشنبی بازار هست جنس رو با جنس عوض میکنن اینکه که چون با هم معامله میکردن و با هم زندگی میکردن و با هم به اصطلاح و از زندگیشون روبرام میکردن نشون باشن بازار و عرض کردن در عوستایی از او و چهره که شده از یک طرح شده باجار از یه طرح شده بازار و این در تمام زبانهای دنیا میدونی که بازار رفته به هم معنی و از فارسی سید شکستن بازار به معنی ارز کردن کم کردن شکوه رو نبشون به فر جهاندار بستش میان بگردن برابر قرض گران ارز که گرس شاید قدیمترین سلاحی ویزه که با در حقیقت مارکز و قیروبان شنان میگن که اصلا به دست استفاده از ابزار بود که آدمیزاد و آدمیزاد کرد البته این نکته بسیار مهم هم هست که هیچ حیبونی ابزار حتی یک سنگ به کار نیمبره خرس خب حیبونو با حوشیست میتونه یه سنگ برداره پرد کنه نمی‌کنه. نکرد. نمی‌کنه. فقط با سلاحی که طبیعت نشون داده با چنگ و دندون و دور فازمون نشونش داده. اولین حیوان اولین موجودی که از یه وسیله‌ای استفاده کرد، یعنی ابزار به کار در زندگی بشر بوده و به همین ترتیب نیروش هم در افزایش دارد. برای اینکه مثلاً فرض کنیم که یا آدمی که میتونست 20 کیلو، 50 کیلو بار بولان کنه، با اهرام 300 کیلو بار رو بولان میکرد. یا همین باش چماک که دستش میگیره، زورش بندد، زور خرسی زدم بیشتر میشه. این است که بعد هم ابزارها تکامل پیدا کرده تا به اونجا که سرعت آت و شرف رسونده با، اونجا و قدرت رسونده با، اونجا و الکترونها در خدمت خودش گرفته هر کاری دیدارش خاتم میکند. این است که این گرز احتمالا، چون ساختنش هم هیچ چیزی یه بوده دیگه برای دیوان میگفتن سلاحی که دارن که دیوان فقط هم یه سلاح هم دارن هیچ چیزی ندارن اونا هم اینجور به نظر میامده که خیلی در مراحل دیگه چیزی بهش میگن دارشمشاد دارشمشاد هم مثل گرزه یه چوبه میگن که سنگ و سراخ میکردن میکردن سر میشد دارشان شد و تنها سلاحی که دیوان کار میفرمیدن همین گرز بوده شمشیر و تیر و کمان رو نمیدونم این حرفا نیست یا سوار نمیشده اصلا در جنگ تا اونجا که گفته شده به هر حال این گرز اولین سلاحیست که ازش اس برده میشه دیدین شنیدین همینجا گفته بود قبلا که سلاح نبود همه برهنه جنگ کردن لخ بودن یارو سر رو سر, سر این است که روزگار خیلی قدیمی است که باز عرض کردم که جنگایی که در این دوره اساطیری اتفاق میفته با دو بیت سرودش هم میاد که همینج هم لازم میگه می به فرد جهاندار بستش میان میان بستن علاقه بر معنی که بستن کمر به معنی آماده شدن هم هست البته این معنی از این لحاظ است که هزاران سال، هزاران سال بشر لباسش قبای بلند میده همین قبایی که داهاتیه تو چند سال پیشم می تنشون میده همه شون بدون است یه جورم وزیرم هم بود لباس منطور کرمه بود مال داهاتیه کرباس <متصف> آبی ولی دوخت سریفترم این دوخم ولی همون بود یه قبایی یه هم نداشت همجوری چیز بعدم بعد دوگمه داشت یا بند داشت و دامن شد وقتی میخواستم کار کنن این دامن رو میزدن پرشار میشون وقتی میخواست بره پشت گاباه هند این،, این دامن قباه که نمیذاشت که این میزد بالا این به معنی کمر بستن یا دامن بر کمر زدن اصلا کمر بستن محکوم آماده شده میگرد که علاوه بر این برای جنگ میگه کمرم بست کمرم شد. داشته ندشته نمیدونم و هر حال معنی مجازی کمر بستن نمی آماده شدن به فر جهاندار بستش میان به گردن باور گران همه نر دیوان افسونگران برفتن جادو ستایی گران تصریح میکنه فردوسی جادو بودن دید. افسونگر بودن بعد در فرسی چنان که می‌دونید صفت معصوب مطابقه نمیکنه مرد خوب، مردان خوب نمیگن مردان خوبان صفت معصوب با هم مطابقه نمیکنه. ولی گاهی در آثار ادبی به خصوص در آثار ادبی قدیم مطابقه می‌کرده برفتن همه نردیوان افسونگران یعنی نردیوان افسونگر مطابقه صفت معصوبه این تا دوره حافظ و اینام بگه حافظ میگه که خلاص حافظ از آن ظلپ تابدار من مباد که بستگان کمنده تو رستگارانم یعنی رستگار. هم. همه نردیبان دیوان افسونگران برفتن جادو سپاهی گران حالا پس اینا هم جادوگر هم افسونگر هم هستن افسونم سریحن میگه افسونم دارن دمنده سیهدی بهشان پیش شد دمنده دم همون نفس زدنه و وقتی آدم نفس کنم میشه موقعی است که خذفناکه بود خشناکه بود در حال جنگ بود به همین دادیم دمان و دمنده به معنی خشمگین به معنی آماده برای جنگ و دعوا هم به کار رفته بایده همون دمیدنه همون دم و همون نفس دمنده سیهدی به شان پیش رو ارز کردم که دیو سیاه دادیم و دیو سکیل و تو همین کتاب آفر میتردوسی بنده هر دوی اینا رو بحث کردم و موارد یعنی در شانامه زید دیو آمده اینا رو یاد کردم یه مقاله اونجا هست های که علاواندن میتونن تا وقتی کتاب نیست اون مقاله رو یه نگاهی بشن دمند سی اهدی بشن رو همه با اسمان فرق کشیدن او او اسم سوکه مثل وقوق و تبتق و شرشل و زرزل نمیدونم که میدونید که هر, هر قامی یه جور اینه میشنه ده مثلا سلای سگ رو عرب تعبیر میکنه به اف ما و او او ما میگیم وقوق در زبان پارس در فرانسه فیلی داره ابوهاییه در همون باز اینا هر کدوم به اون تناسبی که این صوت رو میتونستم به زبان خودشون باش تطلیق کنن اینا درست کردم که اینا شکن اسم صوت یه بنده خدایی یعنی هم به وقتی نظریه داده بود که اصلا زبان اول بار از اسم صوت به وجود آمده داره ولی درست نیست. کار او اسم صوت معنی سرسده و هیاویی که ایمان کردن جهاندار تحمول بافرین آفرین در زبان فارسی و در بسیاری زبانهای دیگه احیانا زبانهای هندوگروپایی و که دو کلمه با هم ترکید میشن و حرف آخره اولین کلمه و حرف اول دوبومین کلمه یکیه یکیش حضر میشه با آفرین میشه بآفرین دوست تر میشه دوست تر این در عوستایی هم هست این هم همه در فنسون اینا هم هم هست بآفرین یعنی بآفرین جهانده تهمورس بآفرین بی آمد کمربسته رزمکین یک و یک برآراز بادی جن یعنی تعبیه کرد یا آراستن، چون معنی آرایش علاش کرد یعنی حد سازمان داد جنگ و دیوان این یک, یک هم تطو طرح بر روس خیلی به کار می بره معنی خواستی، نداره یک, یک بر فرا بادی جنگ نبود جنگشان را فراوان درن ببین طول نگی چرا از ایشان دو بهره به افسون ببرد امروز یک بنده این افسون افسون است، افسون از است و اونا هم که از افسونگری مزایقه نمی دیوان ایمان افسونگران بودند. ولی ظاهران افسون تحنوریس خودت زیادتر بوده که با افسون دو بحره از اینا رو چیز میکنه من نمی دونم که دو بحره از چند بهره؟ شاید شا... من نمی دونم البته شاید دو پنجمه قاید نگاه تنم، فهرنگی مهم اگه رو فبادران یه نگاهی بکنم ما اینجا ابزار اینا هیچی نداری من در بهتی هم نه کتاب دارم،, فرنگ دارم. دانش من فهرنگ دارم اینچه گفتن که شد، دیده نزا باید برون لا کتابی آخر از لاکتاب باید برون من اینچه لاکتاب عرض کنم که اینا رو بعد ببینه که نمیدونم، دو بهره تمام میکنم تا پنجم بشه حالا، یا, یا دو شی از ایشان دو بهره به افسون به دگرشان به گرز و گران کرد پس تشیدندشان خسته و پسته خار یکیو داره یارش به جان خواستند دان زمان زینها زینهار خواستن یعنی امان خواستند زینهار یعنی امان بعد زینهار خواستند داریم و زینهار خواستند زینهار دادن داریم که بنایه امان دادنه و زینهار خوردن به معنیش که دستن قول امانی که دادن که الهمدلال روش جاری ما بوده در کل تاریخ ایان <تصفيق> <تصفيق> پرآن مورم کردیم این دسته دیم بابا بایدم که من گرفتون این و این بالا امروز و دیروز و پیروز نیسته فکر نکنیم مثلا سلسله پهلوی یا سلسله خود از قدیم الایام یکی از وسائل پور زدن این بوده که قسم های قلاز میخوردن حتی گاهی آدم معترم این قاضی عادل ایرم شهایت میگرفتن می‌نوشتن هم این پر رو میادیم می این پشکن زینهار خواهیم و یکی از نشانه های زینهار دادن یکیش نشانه های دیگر هم داشته انگوشتره شخص زینهار دارست نحافظ میگه که از لعل تو گریابم انگوشتری زینهار ملک سلیمان هم در زیر نگین باشه. شد. انگوشتری زنهار، پادشاه یا اون کسی که فرمون رواست، انگوشتر خود چونین کسی داره که این کش رو باشه به عنوان زنهار. به جان خواستندان زمان زنهار، به از این به جان معلوم میشه که گاهی مثلا به مال زنهار خواستند یا زدگی هم احجانا کشیدندشان خسته و بسته خار به جان خواستانندان زمان زینهار که ما را مکش تا ایک این نوع هنر بی آموزنیمت که آیت ببرد بی یعنی بیاموزانیم آموزاندن متعدی آموزاندن و کلمه هنر دو روزوزه روز اولش روز دومش اول بگم برای که آسون‌تره روز دومش همون نر نر به معنی جنس مزکر به معنی نیرومند و برومند و مردونه نام پس مثلا میان پلونکاس مرد نریه خب همه مردان نرن این از اون لحاظ گفته نمیشه یعنی جوان مرد است و مردانه است تو امثال این نر به این معنی که خود کلمه مردی هم به همین ترتیب تعبیر میشه به عنوان فرومندی و جوان مردی و بلان کس مرده نه صدن و حتی زنهایی که مردانه میکردن که میکردن که زنان ها مرد کردارن یعنی مصروف جوانمرد هم اول هو در پعلقی هست هو هو صورت دیگری از کلمه خوب پس هو نره، یعنی نیک مردانگی، مردانگی نیک این اصل و این که و یعنی آرت گرفتن، خب گرفتن، ای بیان نداره اما اشکال اینا, اینا این است که اگر آدم روشن نباشه بعد اوها میخونه که روی فردوسی که بیا هنر یادت بدیم باید حکس کنه میخوام ساز زدن یادش بیاد. در حالی که نیست که نیستی که خط اما هنر یعنی مردانگی و اصلا در, در کتاب های حماسی آثار هماسی هنر وعنی شجاعت و وعنی شمشیرزنی و جنگ آوری این ها دیلتر که هنر نزد ایرانیان است و بس مرادش جنگ آوری که ما آرام من کشت تا یکی نوع هنر بیاموزن میمت که آیت ببرد من یه دو کلمه اینجا به خط اول بگم و این است که از هیچیک از یعنی دوتا از مهمترین اختراعات بشر اولیش زبانه اگر زبان نمی بود کسی تجربهشو به دیگری انتقال نمی دوست. و مثل هیگونات خودشون میکنن اگر تجربی بکنن میرن نمیتونن انتقال بدن پنج. باید هر کسی دوباره هر سندگی ولی تجربه, تجربه شهست سال، هفتاد سال، 50 سال زندگی رو یک کسی به حسود در کارهای فنی این مساعده برای اینکه متاسفن نصیحت و تجربه زندگی رو نمیکیرن بچه ها ولی تجربه مربوط کار و پیشه رو نتیجه یک عمر کار کردن رو در ضبط دو ساعت آدم میتونه به آیندگان پسپوله و این چیز زبان زبان چیز سیبژکتیده زبان از یه مرز نیست تو یه مرزید بیرون در عالم خارج اونیسید یه هر پیسید تو ذهنه بنده هست میره تو ذهن شما این عیبش اینه گرفتار زنجیر زمان و مکان. یعنی کسی که به وسیله شفاهی میخواد مطلبی رو به کسی دیگه انتقال بده باید صداش برسه اون زرفت صور که نبوی که رادیو بونه اون تلفن پیسی که نبوی که مردم باید اولا همز... هم مکان باشه به برد بورد صدا باید با صدایش که هم همزمانم باید باشن یعنی لاقل پیری این با به جوانیمون باید چکه این نمیشه و اشکال بزرگترش این رو گاهی قید بلای عام میامد یه زلزلهی، یه تاؤنی، ربایی، مندم سید مخوبی یه ده کدر رو به کل میشست میورد پیر و جوان و زن و مرد و با همه تجربهشون و با همه شعرشون و با همه عجلشتان میورد یعنی میراس محنفیشون از بر میرد به کل زبان امری سوبجیکت، از ذهن بزن میرون در نفر اوبژکتی اختراع خط یعنی این که شما میتونید اون چه در ذهنتون هست بدون اینکه که مغزی رو روبروتون باشه که اینو منتقل کنید به اون از وجود خودتون بریزیم بیرون نتیجه نتیجه اینه که زنجیر زمان و مکان از پش بردیشت داریوش داروش بزرگ، یه شیزی های رو سنگ شما الان می توانید اون رو بگیری و بخونی و بخونی و بخونی زمانی و مکانی به کلی بردشون خط اهمیت فوقلادهش نمیده اولین و مهمترین اخترافش، اختراف زبونه به این دلیل که اصلا زبون پشر رو پشر کرد خاتم اختراع بزرگش، یعنی امتیاز بزرگش اینه یعنی که بشر ما آقر تاریخ رو تبدیل کرد به بشر تاریخی اصلا تاریخ یعنی چی؟ یعنی از روزی که ما نوشته در دستید از اون که بیشت از اون نبود اگر هم سینه به سینه یه شده اگه اون نوشته شده رو شده دست ما رسیده اگه نشده شد در مورد همه شاهنامهش میگه یکی نامه داستان. پسندیگه از دفتر راستان فسانه کوهن بود و منصور بود تباید پیمنده بود دور بود گذشته و رو سالیان دو هزار که برتر نیاید شما دو هزار سال کتاب دو هزار سال قدیم که نزشت فردوسی دستش ده روایت هماره دو هزار سال بوده ولی نوشته شده میدونی این از که ممکنه بسیاری مطالب از دورانهای ما قبل تاریخ به دست ما برسید همچنین ممکنه بعضی چیزا ما رو در کارهای تحقیقات ما قبل تاریخی کمک بکنه از قبیل گورها از قبیل ابزارها از قبیل کارهایی که کشکیت که بازتان و مردم شناسان و اینا میکنن اینا یه مدار زیادی نتیجه میده ولی تاریخ از روزی شروع شده که بشت تونسته به حالا این نوشتن اولش بسیار ساده بوده مثلا فکر که گوسفند عکس گوسفند میشه. مثلا فکر که خونه تصویر خونه رو میشه. یعنی بهش میگن ایدوگرام یعنی پندار نگاری، به نگاشتن بیت. حالا این یه مشکلاتی داشته. اولش این که اسم معنی رو چجوری بنویسن؟ گوسفند مینوسن. خونه رو می مینوسن. ولی محبتتون میسن. تو رفتن چی میسن؟ اینا هم یه راههایی برایش پیدا کردن که مثلا فرض کنید که اونوار سمبل محبتی زیر یه مادری که بچه‌شو در آغوش داره، دیگه هیچ تردیدی نیست که هیچ مادری تو دنیا نیست که بچه‌ش دوست ناجی. یا مثلا دو تا پا که یکی جلویی که عقب، وقتی نقشش رو بکش نشونون اینکه بری رام. فرض بلی به هر حال باز بسیار مشکلات داشت و این علامت ها تعدادش هرقدر زبون بیشتر یعنی هرقدر ذهن و شرق پیشرفت میکرد تعداد این علامتی بیشتر یاد و بعد سعی کردن این علامت ها رو خلاصه کنن حالا لازم نیست اگر خونه رو میخوایی بکشید پوشم روست هم که آبیزونه بکشید و پنجره شم یک چهار قسمته بکید شمای خونه یه چیزی که نشون بده این خونه هست کافیه این هست که کم کم این خلاصه شد به صورت علامت های میخی خط میخی ایدئوگرام حط میخی غیر علف خط مردم بابل آشور خط میخی غیر علف بای. علامت به دوی کتابی خوندم راجب تمدن بابل نام هم میگه که کسی برای اینکه یک کتابت خیلی ابتدایی خیلی مختصری به دست بیاره چارده سال باید بره کتک بخوره از اون معلم فقط برای خوندن نوشتن مسائل جاری رو میزن. تازه یه مقدار زیادی لوحه از پاقل آشکت هست که همین این مسائل دست زدن به چیز صورت حساب، صورت سیاه ها بناسی از غلطه برای که اون بچه باید مثلا دو هزار تا علامت رو که اختلافات خیلی جزئی با هم داشتن این رو به این خیلی کار دوشت باری یه روزیر به مصری هم صورت دیگری از, از همین ویدیوگرام اونجا هنوز تأثیر چشم روزیر شده ازاس کلا بودید که اختراع مهم مدیگه، اختراع سربون رسیات مهم مدیگه خیلی شد این دو اختراع رو تکلیم کرد اختراع سربون اختراع علیه خیلی برای اولین بار کینیقی ها که قوم تجارت پیشه و ناچار بودن بریانه بردم بودن تا سباهل چین رو می گفتن که بعدی کشکی هستن تا حوده امریکا هم افتده وقتا برحال کار ندهد این حالا بود می رفتن تا سفرهای دوده است و اینا معامله باید بکنن و باید اینا رو یاد کنن از خلقی که زبونشون هم برادن اینا باره اولی بار متوجه شدن که درسته که یه زبون ده هزارت کلی نداره ولی ده تا صدا نداره اگه به هم مثال خیلی محسوس بزنیم شما صد هزار تا امارت و اشکال مختلف در آن تون هزاران هزار امارت به شکلای مختلف ولی مساله ساختمانی که اینا رو درست کرده چند تا چند؟ تازه لزوما همه اون مساله در همه این خونه ها به کار نمیره که اونجایی که چوب زیاد میسته اندیکا خونه ما، شیده ماده به اصلیش چوبه اونجای که سنگ داره سنگه الاخره فینیقی ها برای اول مار متحجه شدن که دستگاهی که صدا تولید میکنه خیلی دستگاه کچیکی این این از این هنگره هست از این نایی هست تا نای. این دستگاه خیلی دستگاه کچیکی و صداهایی که از این دستگاه میتونه بیرون بیاد محبوب یه مقدار دو هست، از بیخ علم، مثل ا، او، ا، ا هم اونجاست، باقی دست ها کاری نهارید باید کشم میرسه به لب، مثل ب، مثل پ برای ترکیبات رو بساطی هم کنید ولی کل قطعه، فکر کردیم که آما چرا برای هر کلمه یه علامت درست میمید؟ کلمه رو میبینیم، از چند تا صوت تشکیل شده؟ برای هر صوت یه علامت ترکیم نتیجه این که هزار علامت تبدیل شد به چه تا هر افبای فارسی باستان هر پای نیفی زبانی که در دوره عخامانشی زبان رسمی بود. ما هم نمیدونیم تازه نامه همی که می نوشتن به همین خط می نوشتن یا نه ولی کتیبه ها به این خط یعنی ترمسانت دیده نامه نوشته از دور عخامانشی ندید این که نمیدونی خطی دیگه بودی یا نمیدونی ولی این که هست خط علف باییست البته نه علف بایی مثل مال ما هست. در حقیقت سیلابی که اجایی برای اینکه اینا مثلا ب رو نمیدونی مثلا ب یه بدون بی حرکت تثبتوند میشتن ب یا ب یا ب یه دونه اینو دوتا شده یعنی یه سیلاب درجه چل تا علامت داره این هم تا, تا که خط میکی فارسی واسطان خشکی بیده و اولین خط میکی که خوانده شد و بعد به کمک او توانستن سایره تو کتر رو هم بخونن خط میکی فارسی واسطان به دلیل سادگیش با تمام این اعمال ارز کنم که با همه این سادگی که این داره مونده شدن این خط شرحش یه داستان پولیسی بیشتر شده ارز کنند که اولا نمیذار این خط دیگه که نمیدونستن از راست به چپ از چف به راز، از بالا پایین از پایم چند دفعه نکردن های که رفتن قالب بکنن از اینو بیاختن و میاختن مازشون راه رسیدن اونجا نیست چوب هست و اینا تعدیفتن حالا البته مسئله هست و اون روز که میتاره کردن که این کتیله عظیم رو که پنج ستون نرد سه چهار, چهار بعد یه زبن پارسی باست بعد بابدی و آرامی هم هست یعنی سه زبون نوشن شد این رو باید قال جا بسیار کار دشواری بود به خصوص که هموطنان عزیزی ما وقتی اون عادتی که ارز کردن به آثاری بدشتان از این برم دوستان عشایدین ها چیران کردن میکردن به چیزی که ما نشونگیری میکردن یه مقدره از این را داغ میکردن برای این خاله گردنشتان ما رو میکردن و حالا اولین بار این به هر حال آمد بودشتنش اونجایی که توش این دیدن که یه چند تا از این علامت که میاد یه میخ کج فکر کردن این مرز جدا کردن یه کلمه هست کلمه همطورم بنابراین تو مثلا کلمات رو هم هم حالا مفهومه خلاصه این کتیبه ها این نقل معنیش نه ترجمه در آثار هیرودوت و همسال اینا بود اصلا هیرودوت نوشد که داریوش مثلا و داریوش نینکردگی نکرده و بعدم این کتیبه نوشد که این کتیبه هم این حرفا رو زده وانی حرفای کلمه این تبدیل نکرده تجیبیست ولی اینا مضمون این کتیبه ها رو یک کوهی به مویی به طور تقریبی می‌دونه سنیم آدم و فکر کردم که این کلمه به اول هر پاراگرافی که کار میشه باید داریوش باشه با باشه یه دا داره یه ری داره یه ری داره البته در چیز، یک خود براستره در فارسی باستان دارا یووش یعنی کلمه از دارا یوه بلان حالا در, در ایتالیایی یعنی اینو اسمی دریو از همینه دارا یوه در حالت فائلی میشه دارا یووش دارا یوش هر حال فکر کردنی که این باید نیمیشه اینو خواهد آقایی بوده به نام رالیسون این اصلا نظامی بود این نظامی خود این قالب گیری و این بدبختی روی می‌کنه سال‌های سال می‌شه این اینجور می‌کنه این‌ها دوتا، این‌ها دوتا، این‌ها قدیم، این‌ها دوتا می‌کنه ده‌تا از این علامت‌ها رو کشم منتشه من این فرق رو شو می‌کنم این‌ها و این‌ها رو بگیم آقای دیگر آلمانی به نام اوتوگروتوفنده منم دنبال این کار بوده البته این غالبه هم عکسش شده در درسته کار میکرده این بعد از سال ما کار کردن من من یه مقاله می‌نویسم و یه مقداری از اون چیزای رالینسون رو نرد میکنه میگه اشتباه کرده در اینجا یه چندتاش هم خودش پیدا میکنه میسه هم دیگه هشت دیگه باشه اون وقت درست مثل معادلاتی که مثلا دو سیزا مجبور داری، یه مجبورش که بده کردی میذاری تو معادله به اون مجبورت میگید، دست فکر می کنی اینا کم کم خونده شد به دیزیادگری، هم روتو فند و رالینسون بودن و بعد باقاش خونده شد، دستور زبانش نوشته شد ارز تمام مطالبش تهیه شد دلیلش هم این بود که فارسی باستان 600 کلمه غیر مکرر داره زبان بسیار دشواری هم هست حالا بحث مراجعهونی نیست ولی دشوارترین زبان‌های دنیا تا ما در دست داریم 3 تا هست که اوستایی یکی, یکی فارسی باستان که اگر شنیدیم که گرامر آلمانی و گرامر روسی سخته گرامر روسی و آلمانی پیش پیش فارسی باستان اوستایی هست گرامر نیست اسم 8 حالت داره در آخراش هم ترمید عشق حالا بگذاریم از این کار به هر حال توجه که این 600 کلمه به مکرر داره عوستا این که در درست داریم در درست کرده ولی در سانسکریت لات و عدوالا توحسا آثار داریم زیاد بعد نه تنها دستور زبان رو نوشتن داریم مونده دستور زبان که هیچی معانی و بیان و عروض و تنایه لفظی من تمام اینا رساله هایی در نوشتن در دست من یه بار گفتم که این سرزمین بلاکش ما خیلی فتبختی ها داشتیم هند جز همون یه چهار تا قدمی که محمود تا دهلی اونجا ها رفت یه بارو یه قارتی که برگشت دست نخورده این چه تا ما ما کتاب دور قاجار نوشتن فقط اسمش داریم پس این بیوار چین و این گوندگی سه سال 4000 سال پیش کشتنه دست نخورده هست یعنی جایی که دائما محل تاخت و وقت آمد بیده و این گرفت داشته، همین سرزنین این که شهر و غرب می‌فیوسته و نتیجه‌اش این بلای داشته آخری‌هاش هم همین جنگ دوم و جمع است برحال عرض کنم که چون تمام مواد سانسکریت در دست و بنابراین تحصیل سانسکریت هیچ اشکالی نداشت و اینا زبان اوستایی و زبان فارسی باستان و زبان سانسکریت سه تا بسیار بسیار شدند با اختلافات بسیار جزئی این بود که توانستند ها پیش از فارسی باستان گرامر رو چیز اوستایی رو درست کردن و کارش کردن و خود اوستایی رو چاپ کردن و بازم این چند تا از بزرگان بیشتر آلمانی اوستا رو تحصیل کردن درست کردن بعد هم فارسی باستان شروع کردن و گرامش رو نوشتن تمام کارش کرد و حاضر حال این دشیفره کردن مثل خوندن اینا کارهای خیلی با مازه و یک مقاله در مجله یغما هست راجع به هنگ کیفیت خونده شدن خط فارسی باستان خط علف که و بعد به یاری او توانستن خطای بابلی و آرامی رو هم که علف بایی ایدیوگرام داره بخوندن و خوندن و اونا رو کشت در آوردن با این حال هنوز زبون هست که نتونستن بخوندن حتی نمیدونم زبون هست یه شهر باستانی در هند در پاکستان فیضی، در ایالت سند، یک باستان میکرش شده مهنجدارو، اگه اسمش شدید باشید، در کنار رو آجور, آجور، نظامی های ما، اخته داشتن چهار هزار سالی بعد خیابونی که آجور، فرش کامله یه چیزایی اصلا چه چیز عجیب غریبی یک نقشایی اونجا هست که اولا نمیدونم خطه یا نیست باید موفق به شیفره کردن چند الان هنوز فنلاندیا ها از اون مقتی من مهمور رو در پاکستان یاد دیدم گفتم فنلاندی ها دارن این کار کار میکنن هنوزم گزارش در این باپانشه هست برمان ارس که این مسئله خط و از الف با که پیدا شد اون تعلیم 14-15 ساله تفتیل شد یه تعلیم چند ماهه و با این متد جدید که الان میدونید که در در به یه میگن خطش بده، الف بده عوضاً بد نیست، به هیچ فش بد نیست حتماً از مال انگلیسی بهتره برای این که گفتن که برنات شما میرن زیادی پول وقف کرده برای اصلاح خط انگلیسی خب انگلیسی های تبا تبایی یه خودشون انگلیسی به دنیا آمده بودن رفتن کفتن خوربان این که صحب نکسته شما این که ندره رفتن برداشت نوشت جی ایچ ای او تی آی کفن این برخون کفتن خب این خواهده فرم تی خب نخیر این میشه پیش شی آف پیش بله G-H صدای F میده مثل در رافت و اینافت او هم صدای ای میده مثل در کلمه ویمن چی i هم صدای X میده تمام کلمات یکی از لاتین آزی X میدهم شد پیش و کنم که این گرفتاری هست تا این حد که دو تا انگلزی به هم برسند اگر ازشونو بگن یارو میگه چجور مینویسند اگر هم ازشونو بنویسند میگه چجور میخونند <تصفيق> و اینجا حقیقته که من مثلا میرفتم توی من انگلیس که بودن تو مقرد آژانس مثلا مثلا من جایی که کار بسابتنه و بینید بگیره من این کارایی که با تلفن وقت می خواهدن چیز اسم که می گفت بعد دونه دونه اسپیل میکردی از بای نمی نمی کنم کلان یکی که می گفت اینست که ما الان بچه هر بچه که میره به در وستان، در چهار ماه اگر از از عقب مونده نباشه بعد حبیب پس نکنه که این بچه عقب افتاده است یعنی انفش مثل هنچنان عید داره چهار ماهانیم درست کنه سواد بدیم. حالا یکی سواد خوبتر پیدیم کنه که بعدتر اون بستگیر کوشش خودش داره رفتیم اون کار نداره کمانی که ما رفتیم سالها دست کنیم هیچی نشد سابقی کنم که پلسه مسئله خد مسئله پیدا شدن دوران است و مسئله علف با مسئله در همه گیش شدن خط و تعلیده هست تمام این کامفیلترم واقعا یک قدم تازه است در این واقع برای اینکه اون چه شاید که ما احیانا ندونید معنوم ده خدا ما زوره مشروط هستی دیده خدا یعنی ده خدا سال ۱۳۴ مرده یعنی ۳۶۶ سنون خدا در ازدوستگیر فراد کرده اروپا میخواست توزنونه سویز ازرافی بوده عبر پیده کردن که در ده بوره ای هست در سوئیس، به نام ایوردون نه هست هور پیده کنم در ای بردون سویزی چاخونه هست یه گارس هم رو فارسی باید روپشین ندره چون فرنگی چون علیفتر از نمیشه هیچه هیچه خدا بلند شده رهته خودش اونجا سکونت کرد نادم گشنه و تشنه و بعد بخت و اینو بعد خودش میرهته ایناله میچیده طبیعی است که وقتی خدا به خاطر کنه کاری رو که یه حروف در ذاتون نیم ساعت میکنه اون باید 8 ساعت وقت کنه این تو باید بعدش پیدا خاطر کی به اول کجاست یه وسط کجاست بعد اینا رو درست می‌کرد هر بدبختی بود اون وقت بسه شماره سلوحسافی در میده الان این خواهران ستا اون نسبی آدم اینجا هستن هر بودم کارهای خود چونو میکنن اوقات فراغت شنو میشنن اوقات فراغت شنو میشنن بهترین چاب بهترین صفه بندی بهترین تحذیبات. هر چه میخوان آماده یه دونه این جعبه های کامفت کار یه شعبه اروپسین رو میکنه فارسی و لاتین هر دیگر. این است که این یه قدمه تازه تری یه بزرگتری است در همین را برده شد برها اینا رو پاسم بگم که از خواهیم گذاشم کنم که میگه که که ما رو من که نو هنر که آیت به بر به برم آمد بگیر شبایی رانم تو... <متصف> برخن. نخلی. نخلی. اون دیف دعوه هست که عرض کردم با دیو و خدا و یعنی حرفای که که خبتا کرده اون میگم آنه اون میگم بر که ما را مکش تا اینکه نوع بیاموزن این که آیات به بر که نامبر دادشان زیمهار بدان یعنی برای آنکه ما نهانی کنند آشکار نهانی رو آشکار کردن چی که کردن؟ چو آزادشان شد تر از من ناچار طیفن بگیدن به خسرو بیا موختن دلش را چو فرشی بهتروختن این بهتروختن از عرض روختن این از دروختن یعنی روشن دلش را چو فرشی بفت بودن پیداست که از همون قدیم که آثار اثاری اینا گفته میشه و اهمیت فوق العاده خط پی برده بودن یه تحمیز اسمتیم یاد گرفت دلش مثل خرشی اوزنگش نوشته یکی نه نوشته محسوب خط چه نزدیک سی چه رومی و چه تازی و پارسی چه صغدی و چینی و چه فهلدی نگاریدن آن کجا ندی. آن که نگاریدن آن چیزایی که شنیدی که چند رو خطه همش میگید همش میگید یکی از نکات مهم این است که آریایی ها که آمده بودن در ایران اینا, اینا سطح تمدن چون از تمدن و افراد محلی پایین ترزید از جمعه خب بلد نبوده و نوشتن و خوندن رو از اینا آموختن و این درست همیشه قوم مهاجم معمولاً قوم سهراجرد و بیابانگرد است و که از تنگی و سختی بیابان پناه میاره به رفاه و نعمت شهرنشینی این از نظر سختی زندگی، سختی زندگیش پایین تره از به خصوص فرهنگی همین الان اشایر مثلاً انظر فرهنگی زندگیشون با مردم شهری طرف نسبت نیست، همین این این همین وزد این هست که آمدن، قلبه کردم، در دورهای بعدم این همین اتفاق افتاده مقاله وقتی آمدن سلجوگی ها وقتی آمدن، ترکمان های سلجوگی مسترگون بودن آمدن، میگه که توقیل خط راحت و سوگیل نوشت راوندی نشونه یعنی توقیل سواد ندارد وقتی فرمان ها رو میوردن توقی کنه یعنی امزال کنه یکی چیز کنه میگه توقیه او چنین بود یه علاواتی کشیده حلامت های کشته ناشته، او چنین بود، بر شکل چماغی <تصفيق> شکلیه چماغی چماغی، بالا این امزای یعنی فرمون لازم را بیشن شد فغره سردگی آمد، جد البرسلان ملک چایجه. از سواهل مدیترانه تا مرز سیموجه اون هون چون بود، جهت کشم این هم تا که که برده. ولی آمدن بعد چی شدن دیگه شاهزاده تیموری بایسانگور یکی از بزرگترین هنردوستان و هنرشناسان و هنرمندان دنیا حساب شده. خیلی که این همین وقت، این همین چیزی که ما شاهد سحنه هایی که در دوره باید اسلام شاهدش بیتیم و فصلت. و که ذری تاریخ بخونیم که روشن بشیم این همین سحنه ها در فوزگار هم اتفاق شدیم. نوشتن به رو ها موختن به اشتاها چه خوشی نوشته یکی نه چه نزدیک سی چه رومی چه تازی و پارسی چه صحبی و چه اینک چه فهلگی نگاریدن آن نیکو جاوش جهاندار سی سال از این بیشتر چگونه این چند جور کرونا این چگونه غیر از اون چگونه چیزه ها چه چه ها نیست چه گونه؟ یعنی چند گونه؟ دراندا سی سال از این بیشتر چه گونه برون آوری بیمونه؟ حتی که پیدا کردم میگه یکی چی داره پیده کردن دیگه برای که همه اون آثاری که مخطوط بود و نوشته بود میتونستن بخونن و ازش استفاده بند کردن میگه دورانش هم سی سال بود باز دو بیت آخر وقتی به همون احساسات ارفانی فردوسی باز یادش نمیره که بگه این با همه این قدرت و با همه این دیفندی و با همه اون نفسون الهی و با همه اون فردگی زدی و با همه این هنره که به آورد ورد برفت و سر آمد کرد همه رنج او باند از اون یاده جا یغمایی در مجلد یغما یه مش راپورت هایی که خوفی نویسا یعنی سخنچین های دور ناسو میشه و اول مشکل تو به چهر رو میرزن یواشکی اینا رو چاپ میکرد این اون راپورت بالاش با مینوشت به نم آمند مردم این به به تحکیلی ده به نم آمند مردم از بد و نیک و از بد نیک داستان ما میگه برفت و سر آمد روزگار کنه رنج اومان به جهان رو دار جهانا ما پرورد چو درود درودن وعنی درو کردن دروژیدن یا دروژن درو کردن جهانا ما پرورد چو درود دروژ چونی بدردی پروریدن چه خواله یارو بابا گاب داره یا مرب داره این‌ها رو نازشون می‌کنم می‌کنم و علف مقبل جلوشون می‌گیزه و تغذیه‌ی فصلی به فست این‌ها نمی‌ذاره اصلا تکون بخورم راقم چقدر دیگه اجده‌ها هنجاش نمی‌ذاره حتی‌ها بلکه ها, حتی ها, ها گوشش می‌گیزه بعد که خوب درست شد نازش میبرم می‌برن من اینه که این کار دنیا هم هم اینا خب بعدش داستان جمعشی که حالا دیگه سره به من اونا آره اس کو دکتر خاطو این جاهای دکتر طالعی اومدن باز اون که تنفس رو گفتن که تو گفتی که اینا مشکله این زبون زبان‌ها مشکله از آلمانی روسی مشکل داره آیا معنیش این که من زبان‌های کامل فری هستن شاید حق بود که من اول از اول اصلا توضیح می میدادن. ولی الان این توضیح رو میدن خدمتون که بعدی هیست همون که به ذهن خود شما میرسه که اولی که زبون درست شده چون پنجا تا بیستی تا لغت عادی مربوط به زندگی اون جماعت چیز خیلی محدودی بوده به همین حالا هم مثلا اگر تو داستان های جگلندن بخونید این جزایری که بومی های اونجا ها نشسته بودن ازشون حرف میزنه اینا رو مطرح میکنه میگه مثلا یه روز سیایه بود سیایه بومی اون جزیره که این تا 5 بیشتر بلد نبود سلسله عدد بعد وقتی میخاست بگه 6 میگه 5 تا و یکی و هفت تا 8 تا پنج 5 تا دو تا تا می دو تا میرسه به 2 تا 5 تا بعدم این سلسله به این ترتیبم دیگه از 20 بالاتر نمیره زیاده که 20 انگشت انگوشت داشت تصویب باشه آن و یه چیزایی از لحجه های همین محلی ها که جارگون بهش میگن به فرانسه، این همین زبوناییست که چند تای معدودی لغت داره و ساختمانو خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی بدوی و الان هم اگر یه وقت توجه کرده باشین جماعت عوام و که مثلا میان در اینجا آه، سال هم میمونه مثلا 20 سال هم میمونه ولی انگلیسی که یاد میگیره یه چیز شکسته وسته ولی میکنه، ولی پور و بسته است به مقاصدش رو حاصل می‌کنه ولی پر غلط این جوری بالاخره حاصل این ها اول زبان اولی که اختراع شده همینطور ترکیه بدون شک مونده مسئله اینه که ما قدیمی‌ترین حالا این اشکال و این صورت متن چیزه چطوره که قدیمی‌ترین زبانایی که ما داریم از همین فکریت‌تر جوابش این است که چون ما همیشه وقتی میریم سر کلاس به خصوصی زبان دیگه را از می‌خوام یاد بگیریم خط و زبان را در آن واحد به ما یاد می‌دن ما تصبر می‌کنیم که این دوتا یکیه گاهی حتی بعضی می‌خواد دیگه زبان اینگلیسی می‌گه خط اینگلیسی یا می‌گه خط می‌خواد دیگه خط اینگلیسی یه زبان این این مفهوم در ذهن ما اما در عالم واقع زبان از اختراعش حد اقل حدسی که میزنن سد و در بیسی حد اکثرش در حدود یک میلیون ساده و علت هم اینه اثر مکتوبی که وجود نداشته فقط باید حدس بزنم و این حدس به این ترتیبه که از روی جمجمه اشخاص اندازه میگیرن مردان شناسا و اینا تشخیص میدن که در چه مرحله ای از تعامل مرض زبان را از این راههای حفصای میزنن که عرض کردم بین بین 120 تا 150 تا 2000 سال بود بعد وقتی من در فرانسه در دهه ده 80 ده ده که یک جسدی یک در یکی از خوارهای سویز پیدا شد. میدونید که او سخون و خیلی آسون روشت داره چه تایین کن رسیل کربون 14 کربون میشه کرده ما چه سالی و یه جمجمایی پیدشت که او پیدا در یه خواری که این کردن ما یک میلیون سال پیش بود و محفظه مرزش به قدری بوده که فکر کردن این باید بشر سخنگی و چه کار رو می‌برد به زیادی عقبتان حالا ما اصلا اون کار اصلا کار ندیم. کمترینش که صد هزار ساله می‌گینیم صد هزار ساله بشر زبان اختیار کرده فقط شیش هزار سال تاریخ داره معنی این حرف اینه که فکر کن که یه آدم صد ساله‌ای 6 سال آخر عمرش رو یاد داشت ازش به جاگورش باشه اون 6 سال آخر هم چهار سال اولش یاد داشت. همش چند صفحه بیشتر نباشیم و سال ما قبل آخرش هم مثلا یه دونه کتاب باشیم اون آخرین سال عمرش که میشه هزاره ما از قرن دهان تا 20 یه مقداری مطلبه و علا اون چه میراسی که کل میراسی که به دست ما رسیده از مثلا دو هزار سال پیش یا قدیمتر همهش دو, دو کتاب انقدیر زیاده بنابراین زبون ما نمیدونیم که چه سیری کرده کجاها رفتن کجاها مهاجرت کردن کدوم زبون از کجا به کجا رفته کدوم قصه از کجا به کجا رفته گاهی با یه قرآن دیگری قید از خط با قرآن مردم چناسی یه حدسایی میزنیم و در هر صورت احتمالا زبان نوید و چهارپنه هزار سال وقت داشته برای تکاملش از اون جاربون 25-30 لغتی یه بسیار ساده هی hey, بیتر شد و بهتر شد تو، شده و این تکامل رو در این میدن که هی hey, گرمه رو پیچیده تر کنن در زبون عربی چون زندگیشون یکی از ارکان زندگیشون شطوره شاید ست تا لغت براشون کنن شطره سرخموی زاقچه شطور یک سالی، شطور دو سالی، شطور این بنت مخاست، بنت لبون، انواق اقسام اینا هست و نرش مادهش رو دا هر کنون اسم. خب، وقتیه کسی میخواد بگی که من شطورم و هم رفته، هیچ نزوم نداره که بگی که شطور صرخموی زاقچشم ماده یک سالم و سوارشنم رفتم که اون مسائل اونجا مهجن نیست، رفتم. اگر احتیاجم بود میگه خوبیش شد تو چونیستا خود قبلن حرض کردم اسم هشته حالت داره تغییر میکرده آخرش برای اینکه بفهمم که, که حالت نومینتیب اینا چهار حالتش که در زفنهای اروپایی هم هست الان در زبان فارسی هم هست حالت نومینتیب که حالت فائدیه حالت اکیوزتی که حالت محبولیه او رو سریع که بار را میاد حالت عرض کنم که جنیتیف، حالت اضافه است و حالت ندا اینا اما در فارسی هم از حالت بیشتر نبیره فائلی محبوبی ندا اضافه در آلمانی شیش حالت داره و روی از در فارسی و باستان هشت حالت داره چار تاش همینه یعنی فاعلی نومنتی، محبوبی حکیزتی ندا و فتیب. اضافه جنیتیف، بعد دتیف، ابلتیف، انسترومانتال و لوکاتیف لوکاتیف یعنی حالت مفعول و فی، اونی که با در نیاز از انسترومنته، معنی به وسیله مفعولی که وسیله مفعول و به ابلتیف است که با از میاد در عربیش میگن مفهول و و باقی دیگه اینا هر کدوم آخرهای اسم تغییر میکنی بنابراین زبان سی که در راه تکامل پیموده اول از منطقه های سادیش میکردی یه منطقه میرفته بالا رسیده به اوج پیچیدگی و مشکلیش این در زبانهای باسمه از اونجا سرازی شد یعنی توجه کردن که اون که باید در زبان گسترش بده کنه وکابیلره واجگانه لغت زیادتر باید کشتر نگرمه دوست باید و اصلا احتیاجی نیست به اینکه که آخر اسم تغییر بدی تا بفهمی که این فایله یا مفعولی یا خود چیست ما انا این زبان بعد شروع میکنه در, در خود ایران ما نمیدونیم که در دوره هفتانشو به چه زبان مردم حرف میزدن قبر ن احتمالا زبون چون بوده، ما اون زبون رسمی بوده که می نوشتن باهاش. حالا به هر حال علت اینکه این حرفا می زنیم اینه. درخاوانیشی هم چنان که می دونیم به واسطه اسکندر خونرست شدن. می دونیم. اسکندر که زندگیش طول نکشید. مرتود جانشینانش هم یعنی سلوکیدها مدتی کمتر از 100 سال با خود اسکندر خود اسکندر و باقی یونانیا دوران به تسلتون بر میدان کمتر از 100 سال درست. بعدش اشپانیان روند میکن. اشکانیان به زبونی حرف می, می که بشیم اینفعلالبی اشکانی ازش اسنادی داریم بعدم ساسانیان اومدن بازم هم زبونی حرفزن که این پلی ساسانی اونم اسنادی داریم. زبون پهلوی عشقانی و پهلوی ساسانی از روزار سادیدی گرمه در حدود زبون فارسی تدیه است و این تحور غیر ممکنه در زفت فت سال اتفاق بذاره یه زبان آخه سیرش فرهنگستان که نداشته اون وقتی رادیو و مردم خودشون باید خور, خور این خیلی طول میکشته و پیداست این زبان های باستانی مال روزگار خیلی قدیمتری بوده قدها دوره افغانشنا زبان ها ساده تر شده تا ما چیزی از اون نوشته های امروز توی نامها و مکاتباته شما در دست نداریم 100 سال بعد شد داریم زبانی که آسمون بوده از دشواری اومده زمین بوده در حد فارسی امروز خودمون تقریبا می‌دونیم می که زبانای مثل مثل انگلیسی حتی اینگلیسی حتی گرامر نداره فارسی تقریبا گرامر نداره ان چه دیگی گرامر ساده بسیار بسیار سال چیز آلمانی و روسی اینام یواش یواش مثلا فرسان در عربی سیغه محفرد داره تصمیه داره جمعن داره برای یکی برای دوتا و برای ستا در فارسی باستان هم هم داره محفرد تصمیه بعد مذاکر ما انس داره میشه برای هر شخصی میشه چیش اول شخص چیش داره اول شخص این دوتا سپوت کرده دوبوم شخص، سه شخص، هر شیش دیگه دیگه ایش دوازن متکلن، یعنی اول شخص، یه مفرد داره یه جمع، چارده است عربی، چارده است در فارسی، در انگلیسی، در فرانسی، 6 شیش دیگه بیشتر نداره سه شخص، یه مفرد داره یه جمع، تاهم و بعد مذکر و هم دیدن که به احتیاجی نیست هست من جایی که احتیاج باشه، خم حق حالا مساله مذکر مونث هم یه گرفتاری بزرگ اون اینه که یه چیزایی هست که حقیقتا مذکر مثل مثل هست. مثلا مرد، مثلا هیبون نرخ که اسماشم فرض کنیم مثلا عروس هست بعد مو یا گاب داگ گاو و نه هم اسمش نه. ولی یه چیزایی هست که مذکر مونث نداری. میز و سنددی که مذکر مونث نداری. برای رفع این اشکال دو راه بشتر می‌جید یکی اینه که به طور قراردادی بیان بعضی از این‌ها رو مذکر بگن، بعضی رو مهندس بگن بگن آقا کتاب مذکره، میز مهندس همینجوران بچه‌ها یاد بیان، در فرانسی در فرانسه ماه مهندس خورشید مذکر در عربی خورشید، مهندس ماه مذکره من این قرار دادیم اینا رو میشه میگم مؤنث مجازی مذکر مؤنث مجازی یا بایدتون نمیشه که نصفی مذکر جنس داشته باشه نسفی نداشته باشه که یکی از ناد چیزش تمامه اه... اا نمیشه یکی از ناد یعنی یه قسمت از زبون مذکر جنس داشته باشه یه قسمت نداشته باشه که بنابراین یا باید همه رو مذکر جنس درست ما مثل عربی و فرانسه یا باید ستا بکنند، مزکر، مهننس و خونسا، مثل آلمانی داریم که این وقت برای هر که اینا حالتهای مختلف مرکول که میاد، فایل که میاد، قیل که همرایش میاد، صفت که میاد، اینا آخراش تغییر کنه. چه فایی داریم؟ یعنی این رو اسم شاید کامل بزن کامل نیست، یه مقدار زیادی چیزای از در سر الان در عربی تقریباً دیگه سیغه تصمیر کار می‌رونید و جوان‌های عرب می‌نویسن خوب حرف می‌زنن، می‌نویسن، مقاله می‌نویسن سی روزه برای آخر کلمه رو بلد می‌سن که پل، پل، اصلاً معنی جمله در عربی با به اعراب آخرشه اگه بگی زن و زیدون امرن یعنی زید امرو زد اگه بگی زن و زیدن امرن یعنی زید عمر زیدو زیدو زیدو زیدو برمی کنیم با هر چیست درست بگیم من یادم یه خوزستانی عرب زبون ناصر اه... مترقی، مترقی مترقم از یک جاییست بلندم دو متر به شما بهش میگردم متراخ، یعنی چودستی هر این عرب، عرب زبونه، عرب هر عربی هر دوزنه می‌میبسه، میخونه مقاله می‌مسه بعد آقای رائد که اصلاً تورک، امال آزربایجونه بعدم هم زبون فراگیرش هم که فارسیه چنان عربی یاد گرفته که وقتی سفیر بوده در عربستان سعودی پادشا که مخواسته حرب بزنه تنها که ازش داشته این رائد و نوت خود می‌فرسده می‌گفته اینو شما قبلن تحجیب نیگاه کنیم اینکه ایدویدت نهیش می‌شوند بعد می‌گفتش که آقا این چیز می‌گون راید به این ناصر مطرقلی مطرق می. می‌گفتش که این سرفونه چه گناهی کردن که شما نیجون می‌سنین دست پا شما می‌میش کردن بالا دیست هم که خودمون ما هم دستوی و باید ساده می‌کنم بنابراین من خیال نمی کنم که تیچیده زبون نشون چه در یه دوره ای کمالش دید. در همون دوره زبونای باستانی ازش به یاد دارد. بعدها پدها متواجدن اصلا درفره و گرامر ساده کردن اونها مفاهیم رو واژگان رو بسط این مسئله بود که ایشون سوال کردن فکر کردم که ای بحث کنم احیانا به درد شما بخوره این است که از و اما حالا میرسیم به سر پادشاهی بزرگترین پادشاه هستاتی جمشید. جمشی باشه راجعه علاوه این که این می میخونیم یه مقدار داستان هم در عوستا هست و شرح اون داستان هم در مطمئن پهلوی هستی ای مقداری اینو در شانونت دردوسی نیاماد و بنابراین اگر اون چه در سانه محامده فقط او بخونیم بیش از نیمی ممتنی. ممتنی. هست در باقیش جمشیده نمید این است که من سعی میکنم اون باقیش هم برای اولیش این است که جمشیده از پاسهانه بسیار قدیمی ایرانه و چون اسمش هم در ویدا هست و هم در عوستا این نشونه اینه که دوران او دورانی بوده قبل از وقت که قوم ایرانی از قوم که را شد یکی به نظرم هست یی اونجا یم یا بلعکس من ثواد عوستایی این کوب خدا رحمت کنی مرموم و, مرم و استاج امام عموم هر وقت این صحبت هم می شود گفت بردید از اهل ریمشه بپرسی <تصحاب> حالا بندن شاید بشنم اهل ولی یم یا یی من در عوستایی هست اون هست یم هم یمه یعنی دقلو این لغوی جمع جم چیده شده سن یعنی دغولو. ار ودا آمده است جمع با یک دختر دقلو از مادر سایی به همین دلیلم هم بزنیم جمع. الان در کرمان دو قلو رو میگن جمولو در بیرجند رو میگن جمال. و حالا پس کلمه دو قلو رو هم بگم دو قلو اصلا دو نداره سرش که بردشم قلو خیلی فکر کردن که دو هست قلو هست بعد سه قلو چار قلو ساختن این کلمه ترکیه و اصلا کلمه هست دو قلو دو قلو قلو پس مند اتصاف و دو قلو یعنی تو عم. حالا میخواد سه تا باشه میخواد چهار تا باشه میخواد تو همیش بنابراین قلو نیست که بشه سه قلو و چهار قلو ما اونا ساختیم ساختیم پارسیش جمله در فرانسه جیمل و ژیمو نمیدونم نیستشم چیه عرض کنم که چرا نزید تو این باید. باید. تو این برها، جمل و صورت قدیم میشه که هست اون جمع هم از همونه و گفتن در ودا آمده است که این با یه خواهر با هم به دنیا آمدن، منتها در اون روزگار، مرگ و بیماری رو نامدم منتها چون مادرش یک بار خلاف امر خدایان کرده بود و قضایی که برای خدایان برای عربوده به در که نداده بود خودش خورده بود یک کنه یاد این قبلیه یک دیم کرده بود اینه که خواهر مرده به دونگاه حالا مرک هموش این تو سر اخوش زد که ای خدا اچلا کنم چه خواهد به بریزم فلان از این حرف ها بالاخره برهمنان کسانی که با خدا رابطه مستقیم داشتن ما که البته نیدیم کسی با خدا رابطه مستقیم ولی با امام زمان دیدیم. بود قبلن در دوره. رژیم سابق که سر منبر تلفان میوردن تلفن میکردت می امام زمینمون بردن... آقا چرا نمیاریدش؟ وله به خدا راست از بگرد من این مردم مشتور همشون دارم خود اسلام کافی که البته آدم پدرس بود به درجه یکی بود و خوشبستانه زیر ماشین رفت یک شیاد بلد و زنای بود دویمش <تصفيق> خلاصه اونهایی که با خدا ارتباط داشتن گفتن که تو کار غلط کردی این بچه مرده و حالا چه خواهی که سمی بیزن گفت اون پسرت میتونه فضیه این کارو بده که خواهر زندگی پسر من چکار کنه گفتن تو به عنوان اولین بشری باشه که شربت مرگ رو میچیشه البته بعد از اون میتبیعی نه اینکه بورن. و چون که بیمهنیه که که الان این بمیره به زندگیشی که بیمهنی گفتن اگه جم شید جم جم حالا انوزید شید دارد. اگه جم قبول کنه به عنوان اولین بشر فانی قدم بذاره به دنیایی وقت از مرگ این خوهر هم قبول کرد و به همین دلیل جم در ویدا گلتان و فرمان روای منطلب دنیای بعد از مرگ دعای تیندگی و ظلمت عنوان شید که میاد که در عوستایی هست خشعه تر ترجمه کردن به یه تاپناک و روشند چنان که محشید دو محشید و نامی دارن این که هست گفتن این شید به معنی روشن و طابناکه و جم شید یه یعنی جم طابناک آقای دانشمند خیلی درجه یکی که در سن نوت سالی دین دو سه سال پیش مورد استاد پولیجو فرانس بود جورج نیمزیل یه جا البته بدون هیچ توضیحی نوشته که این که ترجمه میکنم جمع روشن، جمع شیط رو ترجمه میکنم جمع روشن درست نیست و به نظر من این شید به عنوی پادچه حالات ها در فارسی باستان عوضتهایی هست شاید دیگه به خیلی نزدی که به اما دومزی در فلا مدرکی نداده به ایش بچه که بنده در اون حد صلاحیت نیستم که بگم دومزی درست میگه یا غلط میگه این نیست ولدم نیستم بنابراین این فظوری رو هم نمی کنه. او گفته که این روحنی شاهه نه روحنی تابنام قبلن همشید ترجمش به روحنی تابناک ولی دل من گواهی میده که این معنی تابناک باشه به این دلیل که وقتی ایرانی ها و هندی ها از هم جدا شدن عقایدشون در دو جهت جداغان سهی یعنی یک دست از خدایان که ها بودن خدای اقوام آریایی شدن که در فنسلیت بشینگن حسورا این در ریگ ودا در ودایی بسیار قدیمی اسوراها و دعوه ها در عرض خدای با یه درجه از خود را بعضی که ایرانی ها جدا میشن ایرانی ها سعی میکنن از قدرت دعوه کم کن کنن تا به جایی که از تخت او روحیت پایین وقت میشه دیب فرانسه دیو همون دعیوه است میشه دیب این خدای مطرود و شاید تصبر هم از همین جاست برمار کنم که از اون طرف هم هندیا دعیوه رو نگرم بالا مقام شد تا بالاخره مهاده یعنی خدای بزرگ نه هم مه دیگه، بزرگ مادر، یعنی خدای بزرگ بعد احوران، احوران چه شیک خدا ماست در بین نظر به اینکه چنین بود و چنین دور شدنی در بین این دو هست هست، بنابراین جمعی که از اونجا آنجا پا چاهش تشریذ به نظر من لقب نقطه مقابلی که در جمع میتونستن بهش بدن همون شیده یعنی روحشن، پاچه های کشور روحشنهایی، پاچه زندگی بعد در عوستان آمده است که در دوره جمشید پیلی بی و بیماری و مرگ نبود حالا داستانشو میرسن این یه کنم که اینه که به نظر من میاد بدون این که دردوی تحسوسی بکنم به دردوی اطلاع یعنی مبک بکنم به نظر من میاد که همون جمع تابناک درست تره تا اینکه این جمچی یعنی جمچه یه نکته یک نکته دیگر هم هست که در داستان زحاک یکی زحاک به محسین که حامد به حاکم شد اون در فرمسرا در شبستان جمشید بود به نام شهرناز و عرنواز بلافاسه به نام بود فرمسرا بود این گره هر روایت ها به دو صورت مختلف آمده گروهی گفتن اینا دختران جمشید حتی در شاهنامه هم, هم دختر هم خواهر تو مصخه های مختلف بوده که مثلا جمشید دارد دو خواهر بودن دو دختر جا جمع میشه خیلی بعضی جه نوشتن اینا دختران جمشید بودن بعضی جه ها نوشتن اینا جمشید. نظر به اینکه در افثانه باستانی جمشید، اصلا معنی جمشید این است طفل توانی و بعد هم در قدیم ترین قصه گفته شده است که با یک دختر به دنیا آمده بنده به نظرم میاد که اینا خوهران جمشید. نادر میگه زنها کنر گرفت حضرت علت اینم که این مستبور میگه در فیبرسی در شام هست اینست که زن در قوایل مرد سالاری مرکز قدرت و مرکز مشروعیت دوید و زنها که این زنها رو بردش بود به حرمسرهای خودش برای اینکه یه این مشروعیتی برای خودش دسته که میگه اینا بودن هزار سال زهای زندگی کرد اینا هم تو خونهش بودن بچم هم نزدید نزدید بعد که فریدون به زهای چی شد اول کاری که کرد رفت تو حرمسرها شهرناز و عرنواز رو برش آورد تو حرمسرهای خورید رو بزنید کرد و اون وقت یکی از اینا یه پسر دارید این یک چونان دو تا به سرزایید که سر بکنیده توان این رو بعد میرسید نظر الان پس هم بگم که من به نظرم میاد که درستر با توجه و افثانه های بازدانی که وجود داشته خاهران جمشید باشه نه دخترانی علاوه از این جمشیدی که خودش رو زهاد میده با عره دونستش میکنن دخترش رو گرفتن مشروعیتی نمیاره ولی خواهرش رو گرفتن چون منصوب به پدرشه این ممکنه که مشروعیتی دارش اینجا و هر حال اینا مطالبیست که حالا پر. خواهیم رسید در عوستا داستان اون فصلی هست حالا آقای دوتور و جاوندان لطف کردن این جداون هم پیز کردن آقای دوتور مقدم استاد عزیز ونده داستان جمع رو جمع ترجمه کردن و عرض کنن که جز به با لغتاش و همه اینا و عوضا و مناطب کردن و بعدم چاپ کردن بودن سالها پیش در جوزوه هایی که اسم ایران کوده منتشر میشد در یکی از یکی از این رو اتصال داستان جمع و این رو ایشون تکثیر کردن لطفم کردن و نسخه شما هم محبت کردن دوستان که علاقمند باشن که این اون مطلب رو داشته باشن و برایتون جالب باشی که سر گچین رو چنان که هست کلمه به کلمه و با دقت تمام در هورستایی هست داشته باشن در اختیار میتونن دم آقای من سجا ب. که ولی من خلاصه اون داستان اینجا خدمتتون خواهم گفت و در اون داستان مطالبی هست. که هیچ کدونش در شامنطه دوسی نیست الان من شروع کردم چهار پنج چارپنگ رفت مونده هنوز بلی به پایان نمیلسه که روایت عوستا در دوران جمشیر فیری تا فیرماری تا همه زنان و مردان مثل دختران و پسران 13 ساله جوان و جوان پیوانات هم نمی مردند ها قبلن هم گفته بود که اهور آمزده به گفته است که تو میخوای پیغمبر بشی یا میخوای پادشاه. های پیغمبری میخوای تو رو بذارن برای پیغمبری و هدایت خلق اگر پادشاه میخواست گفت من جوان نمی کنم استعداد پیغمبری داشته باشم این است که فره ایزدی به او داده شد و فرهی پادشاه، من پادشاه. بعد از اینکه 300 سال از دوران سلطنت جمشید سپری شد، در زن اینجا قبلا بگم که در شاهنامه فاطر جمشید 700 ساله، البته به روایت علیسو 600 سال. 600 سال که سپری شد، دنیا بر مردم قائم. به دنیا میادن نمی مردن، دنیا تنگ شد بر مردم و دیگه جانه بود و جمشید رفت و او رامزده کرد و گفت چکا کنم خدای ها؟ از بعد مردم همه جانه ها از اصلا مرها و خروس همه رو هم سوارنجها رو کنم جا نکنید او رامزده ها بهش تحتیبید میگه میری کلانجا به سمت مشتق و با اون نگین فادشاهی که در از دیارداری زمین رو لمس میکنیم و با اصا, اصا و نگین هم نشان فادشاهی که قبلت خیلی حرصه برد با اینا زمین رو لمس میکنیم و زمین گستهش کنیم جمشید میره و هم تقدیل که دستگیر بازه شده اینا رو از کتاب روی یا چی میخوایی کنیم که تا پسکش کنیم میره این کارو میکنه و زمین و ست سال دیگه قومو جمشید باز واحد بزن و همجوزها رو ولد میکردن و باز دوباره جا تحمل شد و دوباره جمشید میره، دوباره همون میگه، دوباره همون دستورو میگیره که باز این از مختصات سبت قدیمه جمعه با همون کلمات و همون چیزها، 20 بار تجار شد و نمیان فاکتور بگیرن که بگن بسیار شد این سبک که ندیگه اصلا مثلا در عوستا قرآن هم هسته اینه هم، طبعه یا حالای چند هم در اوستا مقداری مطالب هست کار شده که اگه ما رو بزنید یعنی تکار رو یه دفعه بگید، حجم اوستا میشه مثلا یک تنجه بگید یک چار. و این آقای دکتر جلیل دوستخواه که اوستای فارسی چاپ کرده در همین کار کرده این بسیار زیاد رو چون کاره علمی میکردی، کاره تکچار هایی بسیار زیادو که نظر مقدس است و خواهی است تو باید بخونم بخونم که مؤمنم به این او در علمی های دوباره اصافیت بکرده همون ماجرها اتفاق میخواهه جمع چیز میره عین همون دستورات بشتاده میشه باز میاد زنین یک سه بومی کش کشف باز 300 سال میگذاره در 300 ست, ست باز میره جمشید سرام از دا بار دیگه و به این تردیب زمین به اندازه یک برابر خودش بستره بعد از این ماجراست که مسئله نافرمانی جمشید پیش میاد و زحاک پیش میاد و فره ایزدی از جمشید میشه و در نتیجه تسلط احلیمن است و پیوی و پیماری و مرد مسلط میشه زحاک از این طرف میاد این مورد بحث ما نیست اون چه الان مورد بحث بنده است این است که ظاهرا این <تصفيق> نشانه مهاجرت مردم ایرانی است که وقتی که می آمدن نیشستن و زادو بلد میکردن اونجا تنگ شد بسیدونم مثلا دامنه یک کوهی حکم از این کوه جلوتر نمیشه رفت که اینسان بعد اون رو هم مازن در اون مثلا خیلی دوشباره که الان تیکون کنه اون باید عربورت بینه اونجا چه خبره این اوه چه زحمتی که که یه مدرد که میگذره هشت بره جهاشون تنگ شد، آماده میشه بره اون زحمت راه میفتونم، اون راه سختیطه میکردن، میرفتن به و به این تحطیل این مهاجرات ادامه بده میکرده و جاهای تازه، سردنه های تازه بده میکردن اینش سب، این به این صورت یه بخش دیگه از رسه های جمشید که در عویستاه هست و در پارایجید نیست داستان وره ور که باغ زیرزنی نیست به نام وره جمکرد یعنی وری که جمشید رو ساخت این داستان وره جمکرد رو باید یه هفته که بکنید اش جمشید رو سفرانه ها تا قرمان گفتیم نیسته نفر بودن در شان که فره از گرفته یکی جمشید بود یکیش هم میدونم که هر چرا؟ شرا تو نفرم بیشتر باشی؟ باشه. باشیم همون کسا کشی که هست میخوردن اول فره یزدگی از دست میدردن نمیتونم هست نمیتونم هست فرنگی شهاست آبایی وقتی که وقتی که تازه شها شده بود و اوتومیلش رو پول کردن آوران تو مجلسی، برای سیطا مجلسی بود. برای محمد مجلسی بود. چی؟ تا جوونکی بود. جوون فروتن اختاده مظلوم چیزی. و محصوم مهاب. و بله، بعد از اون رزاشتان و اون سیویل که خون میچکید ازش، وقتی رفت، محمد رزاشتان مردم استقبال مفسدی کردن. البته، محمد زرشایی که ها بود کارهایی میکرد که که چطیره شود مرد رو روزگار همه آن کند کش نیاید به کار آخرین کارش این بود هر کی از ایم هم چه خوش نیاد پاسپورت بره؟ میدین بهش بره؟ بحیث برست تاخیز همه باید بینش برست بسید آقای شما یا علی مدد. بچه‌ها، آخر وقت شبام صبح صبح اینکه اونجا حسابدار بوده، اول نوامبر این کارمون تموم شده باشه که من در قدرت نشم. مثلا انتظار نمی‌باشه که خوش. خدا علی مدد. اورمن شما سلام بخوام بهان توظیح وارد شو اورمن شما سلام